رسید مجده که آمد بهار و سبز دمی وزیفه گر برسد مصرفش گلست و نبی سفیر مرغ بر آمد بت شراب کجاست فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید زمیبه های بهشتی چه زوق در یابد آن کسی به زنخدان شاهدی نگذی مکن ز قصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسیدان که زحمتی نکشی ز روی ساغی مهوش گلی به چین امروز که گرد آرز بستان خط بنفش دمی چنان کرشمه ساقی دلم زده است ببرد که با کسی دگرم نیست برگی گفت و شنید من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت که پیر باد فروشش به جرعی نخری بهار میگذرد داد گسترا دریا که رفت موسم حافظ هنوز می نچشید